تا دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روزه بهتر بله کبادارت چون بلدی بخندی و چشم دل ببازید با اش دل ببندید اشما که دلب سبزه پیچیه توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا با پس فردا اجبا که قلب سبز پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا سلام به گی من فرچید من و فینجا راژیو پس فردای شماره 961 آخرین برنامه زنده این هفته با شماییم رو بریم راستی که از زیاد ما دعا کردیم برای زمین گرم شه چه شو چان گرم شه آقا ما زیاد نشین تشکرام لازم نیست عزیزم گویا می لفه باشه بابا دمتون گرم به به به این پیام دو صدایی خیلی ممنون دعاهاتون ولی ظاهرا جواب نداد چون اینجا داره هر روز سرتر میشه و و دیگه اینجا برف آ دیروزم برف داره میاد آقا شما به جن که دعا کنین کره زمین گرم میشه دعا کنین که آقا رادیو پاس فردا از پراگ منتقل شه به کجا سامی دوست داری ریو دو جانی رو خوبه آره خوبه برزیل خوبه برزیل خوبه آره گوآ آره مثلا کلا آره آره آمریکای جنوبی آره این دو تا رو بکنید خیلی ممنون میشیم آره دمتون گرم اما حالا راجب به آب هوا حرف زدیم بعد از چند روز به شدت سرد از دیروز و امروز توی ایران به تدریج هوا داره گرم و گرمتر میشه طی یک دو روز آینده بارندگی خاصی ظاهرا نخواهیم داشت البته هنوز خیلی از روستا های غربی به خصوص سمت پیرانشهر در مواثری برفن امیدواریم لودرها و ماشینهای سنگین راهداری بتونن زودتر از پس این دومت برفی که همه راه ها رو پوشونده و گرفته بر بیان و راه ارتباطی این هم زودتر باز بشه از روز جمعه است یعنی سه روز دیگه حدودا دوباره قرار بارندگی از سمت غرب کشور شروع بشه احتمالا شنبه شب که ما برمیگردیم خدمت شما کلی از اخبار برف و بارون براتون داریم که بگیم اینجا که گفتم تو پرای الان از دیروز برف داره میباره اینه چی جای همه تون خالی که با هم مریم برف بازی اما خانم آقایون دیگه خودتون بهتر میدونید که الان ما تو خیلی از زمینه ها تو دنیا جزب اولین ها و بیشترین ها هستیم یکی از اون زمینه ها رو که توش ترین هستیم رو از زبون سخنگوی وزارت ارشاد لطفاً بشنوید ما آماره دندون های خرابمون دی ام اف یکی از بدترین آمارهاست تو دنیا تو بالغین. ما. بله. خدا رو که خرابی دیگه هم پیدا شد که ما توش ترین هستیم. یعنی مثلا نمیدونم آسمون به زمین میرسید اگه ایشون می اومد بگه ما تو زمینه داشتن دندون های سالم تو بالغین بهترینیم نمیشه که غیر ممکنه. به حال ظاهرا باید با این آمار دیگه اسم دیگه ایرانو بذاریم بهشت دندون پزشکای عزیز که برای درست کردن این همه دندون خراب حساب اینو تو روغنه دیگه. و یه تسلیت هم به همه ایرانی ها میگیم به خاطر اون همه پول بیزبونی که برای دندون پر کردن و عصب کشیه عصب کشی آقا ما آخر نفهمیدم کدومشه همون و دندون مصنوعی و نمیدونم کلان کاری دندونی و اینجور کارا باید بدن خدا سب بده دیگه دندون آخرتون باشه یعنی دندون درد آخرتون باشه ایشالا مجلس شادیتون خدمت برسیم به خدا جی جان ارزم به حضورت که در رابطه با این اختلافات ایران و عربستان جا در سلامی هم بکنیم خدمت اون هموطنای عزیزی که 500 نفر از مردابشونو توی فاجعه ملا کشتن اما صداشون در نمیاد ولی با اعدام یه نفر که اونم ایرانی نبودش تو خود عربستان سعودی سفارت این کشور رو به خاک و خون کشیدن سلام امت همیشه در صحنه بابک هستم از آلمان خیلی ممنونم بابک جان داستان که اصولا خود جوش‌ها درجه جوشش و مقدار جوشی که میزنن و اینا برای یه سری مسائل خاص خب بیشتره دیگه دیگه کاری نمیشه کرد. خیلی ممنونم از تماسش. او یس. امم، جناب آیت الله جنتی که این روزا به شدت دغدغه انتخابات مجلس خبرگان رو دارن و عصابشون هم صد تعداد زیاد داوطلبین شرکت در این انتخابات یه نمرو همجسیه دیروز در آخرین اظهار نظری که در مورد کاندیداهای خبرگان یا خبرگان رهبری کردن فرمودن که بعضی از داوطلبان شرکت در انتخابات خبرگان یا خبرگان قمارباز و مشروب خور هستن. و گفتن بعضیشون هم مشکلات اخلاقی دارند ما نمی‌دونیم آقای جنتی و یا هیئت‌های مثلا حالا تحقیق و تفحص تونستن به این درخشان پی ببرن ولی از اونجا که نامزد های مجلس خبرگان باید درجه اجتهاد داشته باشن خب این نشون میده که به حال بعضی از مشتهدین و درسخونده های وزای علمیه و حتی اونایی که تا درجه اجتهاد هم رفتن درس خوندن هم ظاهرن اهل دلن و ها و یعنی تو بعضی زمین های دیگه به جز دین هم به حال خبره محسوب میشن خیلی مخلصی خوبی شما؟ بله شما رو عرض میکنم که میدونین خودتون کیارو میگه حالا مشکلات اخلاقی و این چیزا حالا زیاد مهم نیستا که بعد از اظهارات مشتهد عالی قدر حاج آقا شجونی که هفته پیش پخش کردیم صحبت کرده بودن دیگه اون بخش قضیه برامون جا افتاده قابل درکه ولی اینکه آدم مشتهد باشه کلی شاگرد طلبه زیر دستش تلمذ کنن بعد اهل مشروب و قمار و پوکر و این برنامه‌ها بفرموده آقا جنتی باشه یه مقدار دور از ذهن دیگه آقا کلا شهر شرعی رو میگم میشه برای چه میدونم به هر حال یک سری مسائل مثلا میگن قانون بازی و نوع مسائل ولی درست کرد اله کلاش شرعی ولی آخه برای مشروب خوردن نشاستن پای میز غمار دیگه واقعا سخت بشه توجیه و راه حل شرعی پیدا کرد به حال ظاهرا تونستن رو پیدا کردن دیگه آقا جنتیه دروغ نمیگه که آیا در انتخابات خبرگان ثبت نام کرده ولی از قبولی در آزمون اجتهاد این شورا مطمئن نیستید؟ دیگر جایی برای نگرانی نیست. ما برای شما در مؤسسه علمی و آموزشی حاج و دوستان دوره‌های فشرده‌ای را برای موفقیت در این دوره فراهم آوردیم. سلام علیکم اخوی بنده بزودی آزمون شورای نگهبان در پیش دارم چه باید کنم ای بابا کلی نداری که با حاجی و دوستان تماس بگیر برو دیگه بگی اخوی حاجی و دوستان چوره کارا شماه درس های چون چگونه روی صندلی چرت بزنیم اما خبره هم باشیم چگونه بر رهبر نظارت نکنیم اما خبره باشیم طول عمر خود را چگونه با دوره های مجلس خبرگان تنظیم نماییم و همچنین راه های اثبات ارادت خود به مقام معظم رهبری در مؤسسه آجی و دوستان خود را برای قبولی در امتحان شورای نگهوان بیمه کنید مؤسسه علمی آموزشیه حاجی و دوستان شرم این چند کردنت با جواد پشت اپهی آلی بود دو ساعته دارم میخندم خیلی بال بود <تصفح> <تصفح> خوشه برای خودش میخنده بالی شهر خانم کارشون درست آقا سعید هم نمایش بودن به حال دیگه یک نمایش جدیدی بود تقدیم شد امیدواریم که لذت برده باشین زاهرا حال کردن خب چه خبرها برای بچه‌ها خوبین همه خوش میگذره خدا رو شکر که خوبین یعنی امیدواریم خوب باشین ما هم دیگه بد نیستیم و این هفته دیگه خیلی باهاتون در مورد انوا و اقسام آلودگی غرب زدیم ما کلاً خیلی فضای آلوده‌ای داشتیم تو برنامه دیگه شهر حالا این همه از درد گفتیم امروز میخوایم بریم سراغ درمونش ببینیم چاره و علاج مقابله با این معضلات چیه بالاخره دیگه پس قبل از اون یک سلام پس بردایی ویژه دروخاشخاشی میکنیم خدمت همه اونهایی که در هر جایی که هستن و هر کاری که میکنن هم همیشه به محیط زیست و طبیعت هم هست و مراقبن که زخم دیگهی به تن زخمی محیط زیست خودشون اضافه نکنن اینا همونهایی که گاهی حتی مرحمن برای طبیعت کیسه بزرگ برمیدارن میزنن به دل کوه و دشت و دمن زباله رو که دیگران اونجا ریختن و جا گذاشتن جمع میکنن دمشون گرم واقعا آدمایی که تو سیناهاشون یک جنگل مهربونی یک جنگل ستاره دارن به به خیلی مخلصین دم همتون گرم. اما بریم سراغ راه های مقابله با آلودگی یا وسط این همه آلودگی چطور زنده بمانیم شماره 961. بدانید و آگاه باشید که آلودگی های واقعی را وقتی میشود از بین برد که مغزهای آلوده را با بهترین و قویترین شوینده مورد شستشو قرار داده و جیبهایی که بوجه های حفاظت از محیط زیست را در خود جا میدهند را به گونه‌ای با کمترین نخها و بهترین چرخهای خیاطی دوخت که دیگر صاحب جیب حتی برای پاک کردن دماغش هم نتواند دست در جیبش کرده دستمال بردارد لاکن در غیر این صورت همه ما از آلوده شوندگان، و آلود کنندگان تمام نشدنی خواهیم بود امزا برای از بین بردن آلودگی های مغزی هفته پنج روز برنامه اجرا کنندگان خودشون البته به صد تا تایید و شما و برف برای رفع آلودگی نیازمنده های راژیو پس فرد دا بذار اعتراف کنم که یکی از علل آلزگی هوا میتونه من باشم چون اکثرا با ماشین من میدم میرم یه بورد میدم که تو این رفتار احمدی که خیلی هم زیاد نیست سمی سمی‌بزاری اصلا ایجاد نمیکنم یعنی نه ماشینم کثیفه نه اینکه آه. بوغ میزنم کلا با بو مخالفه. حالا یه زن آلزگی هوا هم به وزویه خودتون ببخشید هم از تهران خیلی ممنونم سفید جان ولی شما یه بوغ بگیری دست مثلا باب سر و وضع و چولیدی بری تو خیابون همجوری بدوی بوغ بزنی آلودگی صوتی و بصری ایجاد کنی بر مردم خیلی بهتر از اینه که با ماشین تمیز و بدون بوغ زدن توی شهر بچرخی یا هوا آلوده کنی و مردم سرطان ریه بگیرن ها به خدا آلودگی هوا نه تنها خودش همینجور ذاتن چیز رو اصابه به درد نخوریه با تنها باعث میشه که آدم تو غذا خوردنش هم مجبور بشه یه عالم چیزها را رو رعایت کنه مثلا شما این که مثلا چونم دارم لبنی دوست نداری اصلا شیر از گلود پایین نمیره رو فراموش کن آقا جان خانم عزیز دانشمندا میگن وقتی هوای شهرت آلوده است باید از این چیزها بخوری؟ تا چه میدونم کلسیم لبنیات جلوی جذب سوربی رو که توی هوای آلوده ام جی خودش داره بندری می رو بگیره یا مثلا یه مورد دیگه که در واقع مثل زایعه بزرگ میمونه برای خیلیا اینه که ما یکی از بزرگترین و مهمترین بهانه‌های ادامه حیات روی کره زمین رو از دست میدیم و ازش محروم میشیم اونم چیه خوردن حله هوله اون خیلی بده دیگه یعنی چی میگن که نمیدونم اگه چیپس بخوریم یا پفک بخوریم یا مثلا حتی نوشابه‌های گازدار بخوریم این باعث میشه اثرات آلودگی هوا تو بدنمون تا دو برابر افزایش پیدا یه چه وضعی خوبیه به خاطر این شکم کار خوردن که شده واقعا این مسئولین هم مردم هم همه اجزای دیگه موثر تو مسئله آلودگی هوا باید جلو این پدی درو بگیرن حالا مثلا چش و چهارمون تو هوای آلوده اشکی میشه هیچی پوستمون رنگ بادمجون میشه هیچی شوشمون سربندود شده هیچی این دیگه ش... این شکم لامصا با واش آقا این نکنید بذارید ما تو هر هوایی هم که از بهانه‌های کوچک خوردنمون برسیم دیگه اه. یعنی چی بریم سراغ بخش ورزشی و فری غریب برو بریم فری غریب چه خبر؟ سلام سلام سلام همگی والا دو تا خبر مهم سرشید الان تو ورزش اینان تو تاپ تن قرار داره اول از آخرین وضعیت سوشا مکانی در وازبان زندانی پرسپولیس بگم که امروز علی پرمی رفته بود زندان ایوین که با قید وسیحه و سپردن یه سری سنت برده بود که آزادش کنه اما نشد آره. حسین عبدی آره سخنگوی باشگاه عشقای هم یه صحبتایی کرده در مورد سوشا مکانی که اگه موافقی گوش بدی گوش کن. یه اتفاقی افتاده که یک تبعاتی رو داشت. در هر صورت اگر قوه قضاییه هر تصمیمی بگیره ما احترام میذاریم یکی از بزرگترین های یک باشگاه بزرگ و یک های بزرگی که به صورت الگو قرار میگیرن باید این باشه که موازبه خودشون باشن. بله چون بقیه بازیکن‌ها هم از این کارا میکنن بعضی‌هاشون مثلا حواسشون به دوربینا هست دیگه. این باید, باید حواسشون باشه. این مهمه. آره آره. خبر مهم دوم چیه گفتی؟ دو تا خبرداری؟ این تنش اخیر ایران و عربستان قطع روابط دیپلماتیک این دو کشور به چمن سبز هم کشیده یه جورایی ورش و آلوده یه سیاست کرده آره. عربستانیا گفتن که به ایران نمیان واسه بازیهای لیگ قهرمانان ایرانیام جواب دادن تو این چند روزه خوب. اما امروز یک دو ساعت پیش آقای حسنیخو خوب مدیر حراست وزارت ورزش یه جواب دندان شکن داده به عربستانیا و گفته ما انقدر امنیت داریم که مسابقات تیمای سوریه و عراق و افغانستان رو به ایران سپردن با. به نظر من ایران هم بعد یه نامه بنویسه بگه این تیمای عربی تا یه گل جلو می افتن همش خودشونو می زمین چه وزیشه؟ آره حتما میخوای بگی تا خودشونو انداخت از زمین دابر بیاد خطاشونو بگید دقیقا دقیقا خب بگذاریم فری بود پرونده ورزش هفته رو با چی می بندی؟ پرونده رو باخت با داخترین خبر فوتبالی اروپا, اروپا می مندم زین زیدان فرانسایی زفیق سامی سرمربی رئال شده که دیشب تا حالا تو فوتبال اروپا یه بمب خبری بوده بله خب سامی چطور زیدان؟ همون دیگه ماسترو فوتبال فرانساست دیگه چی چی؟ مایسترو یعنی چی؟ استاد آره سامی که ظاهرا خوشحاله آره خیلی هم سامی رو ببره اعتمالا سامی رو ببره نوچمله آره یا دیروز سامی اینجا آره داشت شنوق میکرده همچه میگفت آقا زیدان تو هبه همه میگفت که زیدان شده مربی رال مادرید و خوشحال دیگه خلاصه سامی که خوشحال باشه دیگه ما هم باید خوشحالی کنیم اتمالا دیگه زن نمیگیره چمالا نمی <تصفيق> ممنونم ازت دفری برز غریب باید خدافزی میکنیم تا هفته آینده شنبه تا شنبه خدا نگهدار تذکر داشتم بفرد. وقتی که کامنت های توییتر رو داری میخونی نباید اسم اکانتم بگی مثلا بگی @فلانی اینو گفته یا @فلانی اینو گفته اینجوری قانون کپی رایت هم رایت میشه مگه توییتر چه فرق با اینستاگرام و فیسبوک و جاهای دیگه داره ممنونم یگانه کاملا حق با شماست 100 درصد حق با شماست یگانه خانم چشم از دفعه بعد اگه توییتر خواستم بگم حتما از میرم میگم دیروز نداشتم خیلی اتفاقی شد دیگه چرمنده چشپ چشپ چشپ حق حق حرف حق دیگه چیکار کنم اه... از حضورتون که تو اینستاگرام مت متيو متيو -E نوشته برنامه مت شد تموم شد رفت منم نظری نمیدم که زایه نشم آقا زبط چیه با برنامه زنده استا اه. دیدی حالا نظرتو داغدا خوندم که زایه بشی آقا بعضی بعضیا من نمیدونم چرا همش میگم برنامهام زبطیه بابا به خدا الان ساعت 9 و 25 دقیقه و 35 و... ثانیه است به وقت ایران البته توی اروپا هم ساعت به وقت اینجا پراک اروپا مرکزی ساعت 6 و 55 دقیقه و 45 ثانیه یعنی این که میخوام بگم برنامه‌امو زنده میشه که باورتون نمیشه شه اصلا برنامه زنده برنامه زنده است بعد امیر گفته که بزرگترین آلودگی که من ایجاد کردم دور زدن تو خیابونا با ماشینم هم بوده خب همین بزرگترین آلودگیه دیگه یعنی کاری که کردی رو دست کم نگیر شما و توی فیسبوک جواد گفته صدا و سیمای خودمون هم آلودگی صوتی هم آلودگی بصری بله اینجوری هم میشه نگاه کرد به قضیه گاهی کیا بزرگی توی فیسبوک گفته اینایی که سیگار میکشن با این کارشون دو جور آلودگی ایجاد میکنن یکی تاع سیگار که معمولاً هر جو دلشون بخواد پرتش میکنن یکی هم دود سیگار که هم ملت رو اذیت میکنه و هم هوای اطرافمون رو نکش آقا نکش خانوم بله ایشون اینطوری گفتن یا حالا لاگل می‌کشی هم یه جور آلودگی فقط ایجاد کن دیگه تاع سیگار رو وامونده رو تو صد حرف کیا درسته بله خیلی متشکرم از کامنتا از تلفن ها. و ایمیل اما جونم برای بگی که برای مقابله با آلودگی چند تا راه وجود داره چون امروز اومدیم بگیم راه های مقابله با آلودگی چیا ها هستند دیگه. تا اونجایی که بتونیم یعنی البته برای مقابله با آلودگی چندتا را هست یکیش اینه که بریم مثلا سراغ سرچشمه ها و آلودگی رو به کل از بین ببریم که خب در مورد آلودگی های کلان این روش از این جواب نمیده شاید فقط تو بعضی موارد خیلی محدود و خیلی لوکال این روش جواب بده مثلا اگه همسایی روبروی میاد مثلا آشقالاشو میذاره جلو در خونه شما خب میشه رفت سراغش با مشت مشتلگت قضیه را کرد. یا مثلا اگه تا پنجره رو وا با منظره چرت و پشامه‌ای آقای همسایه رو بریم مواجه می شیم یه چوب بلند میتونه بردارین آلدیگه بسری رو به کل از رو بندرغ بردارین مصادره کنی دو دفعه که این کار بکنی دیگه طرف از مشاعات بر این کارا استفاده نمیکنه یا مثلا کسی از عزیزان تو شب موقع خواب قورپف می‌کنه آلدیگه صوتی ایجاد میکنه یا مثلا موقع خواب چه می‌دونم هر جور دیگه, دیگه ای تولید میکنه خب اینا همه درو درمون داره مثلا با یه فریاد بلند پارک کردن دمپایی چیزی میشه مشکل قروپوف رو نبره همیشه ولی خب تا حدودی حل کرد و اون مسئله آلدگی دیگر رو مم... نمیدونم مثلاقال نمیدونم چه جور آلدگی ممکنه آدم ایجاد کنه مثلا الان فرشید جا چطوری سال یه آلودگی سووتی وارد صحبت کنن بگوگو آل برخلاف آدگی سوی دیگه اصلا باعث آزاریت هم نمیشه و مفره و شادی بخشه و خ دوستا اون اون دور هم گه جمع میشیم به توصییه آلودگی صوتی میکنیم و خلاصه غم رو یاد او میره صول بله این هم یه مدلشه دیگه حالا شما هم گوش کن ببین چی میگم ببینین میشه مثلا برنامه که البته شما خب شادی میکنین من نمیخوام شادیاتونو رو به هم بریزیم ولی خب برای همیشه که دوره هم نیستین رفروف اقا برحال یه جایی هم هستین که ممکنه نشه خیلی شوخی و خنده بکنین از آلودگی صوتی ایجاد شده میشه مثلا برنامه کنین غذایی که ممکنه در آینده باعث آلودگی صوتی و گایی شیمیایی و این حرف ها بشن رو عزیزان لطف کنن بیشتر صوبا بخورن شبا هم از این نونای چیز هد نون جد سر از اونا بخوریم با نعنا ماست جواب میده تو طول روز هم عرق نعنا بیشتر میل کنین خوب میشین با سلام بیسی کسی سشنب شب را ضمن تعجب از اینکه همه مقامات نظام حمله به سفارت عربستان را محکوم کردن جز مقام معظم رهبری با مروری بر مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته آغاز می عدم شرکت حسن خمینی در آزمون علمی داوطلبان شرکت در انتخابات خبرگان و گمان زنی ها در این باره که آیا نامبرده برده حضب پزشکی کنه یا تجدید میشه میره شهریور میاد امتحان بده فراخوانده شدن سفیر کویت در ایران به این کشور در اعتراض به حمله به سفارت عربستان در تهران و نظر کابشناسان که یعنی حتی سومالی های شمالی هم طرفتار ما نیست سفیرشو به حمایت از ایران فرابخونه به کشورش و تکمیل شدن ردیف هفتم جدول مندلیوف با کشف چهار انصار جدید و فروب کش کردن نگرامنی ها و یخشابر مندلی و فباز سرابسر دنیا از اینکه نکنه یه ردیف هفتم این جدول ناتموم بمونی کل دنیا از هم بپاچه مهمترین سرخط های خبری ساعت گذشته را شامل می شدند اینک مشروع خبرها با همکابر خوشاهنگم بل بر اساس آماری که اخیرا منتشر شده نرخ بیکاری فارغ تحصیلان زن در کشور شست و و نیم درصد است و بالاترین درصد بیکاری نیز به دانش مختگان رشته محیط زیست با چهل و و یک سدومه درصد تلق دارد بر همین اساس یکی از کارشناسان امور زنان کشور ضمن ابراز خوشحالی از این خبر گفت خوشبختان کشور در مسیحات مسیر سیر فرمایشات مقام معظم رهبری پیش می روید زنان کشور در حال تغییر مسیر به سمت شغل اصلی خود یعنی خانداری و به خصوص بچه داری می باشند و یفصود امیدان می روید. با تغییر سیاست های دولت آن سی و چهار درصد زنی هم که شاقل هستند شغل خود را از دست داده به دامان خانواده بازگشت بچه داری پیشه کنند پایان مرشوه اخبار. بله، با هم تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر و بولی بولی دیگر خدا نگهدار. داره آقای میکنفان طلا این خدمت شما چي نه منو بيشي عليه من بولبول بول چيه دادي نه خير متن استفامه بولبول بول. شيشنه نكني تو هم توراي داري آري پسر يا دختر چيه آقا ميكروفون طلازه شي اين حرفا چه رزشته پيش ميات ديگه ببین اي پسر اسمش بزار اكبر دو بولبول بول. خیلی باهلي اگه دخترم هم هست بزار اكبر خوبه آقا ميكروفون طلا خواهش ميکنم شوخي رو بذارين کنار تمومش كنيد چی شد آخه اخ اخ دکتور بچه‌ش نمیشه؟ می‌خوای ازش جدا بشی بول, بول؟ ببین از اول این به درد تو نمی‌خورد ببین چی بهت گفتن. آخه لای میکروفون خلا بخونی نام رو میفهمین ببینم این چیه اما حال خوندن ندارم دیگه ولش. او فهمیدم دخالت بزرگترا بچه‌ی ناخاسته بلبل. واقعا این کار اشتباهی نباید این بزرگترا دخالت کنم بل آقای میکروفون دو... من در اعتراض به شما استفاده دادم. استفه؟ به من چه دکتر نمیتونه به من چه ربطی داره بل بل چون مسائل قاطی میکنی بل بل با هم نکن این کار ببین اشتباه اشتباه نکنی من به خاطر مطلب زشتی که اینجا توی این برنامه نوشته میشه و مجبورم به خونمشون استفا میدم من دیگه نمیتونم بل نگرانم کرده بودی من فکر کردم حالا چی شده با بیخیال سخت نگیر ببین بل بلو تو تا شنبه کن خوب استراعت بولی ولی خوب میشی به جانت خوب من خیلی جدی عملان الان اصلا شوخی ندارم منم جدی ام دیگه اتفاقا میخواستم بهت بگم که وقتی جدی میشی بول, بول خیلی بهتر میشی منتظر به من رابطه نداره دیگه دکتر باید بهت بگی ولی اینجوری واقعا که مسخره رو در آوردین دیگه خدا یعنی چی خب مسائل خانوادگی تو برنادر بیار سر کار منم بهمانه میشه اصلاح اجتماعی باید واقعیت‌ها رو بهت بگم دیگه بول رفتیم که همشین در رو ترکید خول شدم با همین روزا اصلا من احساس غربت و تنهایی میکنم نمیدونم بعد با چی صحبت کنم هفته بهتون گفته بودیم و ازتون خواسته بودیم که صادقانه و بیره بیره بربایستی به چند تا از آلودگی های گلدرشتی که تو زندگیتون ایجاد کردین و میکنین اعتراف کنین بلکه بار گناهانتون سبک بشه و گفتیم حالا به خاطر میتونه کردن هوا به خاطر استفاده از خودروتون باشه برای کارهای غیر ضروری یا ایجاد آلودگی صوتی مثلا تو شبای چهارشنبه سوری یا بوق زدن توی شهر یا ریختن زباله یا همین پنچ کردن لباس و همه اینا رو توضیح دادیم خیلیاتون هم تماس گرفتین هم طور که شنیدید و بعضی از ها رو خوندیم تو این هفته و صداها رو شنیدید خیلیاتون هم پاسخ دادید به ما الان فشید جون که از آلدیگرایی که خیلی از ما شر دوشارش باشیم سر و صدا و جر وابستهایی که تو خونه می‌کنیم، کنیمیم با صدایی خیلی بلند که بچه ها توی مسئله بله. خیلی آسیب می پس بیاییم از همین الان قول بدیم که همیشه تو خونه مهربون باشیم و هیچ مسئله باعث جر بس و سر و صدا شه تو خونه تو بچه ها بتونن با آرامش بهتری زندگی کنن و به درس مششون بررسن.شهاب خیلی ممنونم شعب جان راست میگه دیگه حرفای ناخوشایند و بلند مثلا توی خونه که فاصله آدم ها از همونقدر کمه که خب نیازی قلی به داد و فریاد و اینا نیست قطعا از مصادیق آلو دیگه صوتی محسوب میشه و خب بچام هم به قولشون آسیب میبینن دیگه توی این فضا خیلی ممنونم از شما اما دوستان این سخنگوی نیروی انتظامی خیلی آدم بذلهگو و شوخی هستند برخلاف ظاهرشون ایشون دیروز توی همون جلسه ای که گفته بودن ما نمیتونیم مردم رو بزنیم یه بحث مفصل و شیرینی هم در مورد گشت ارشاد کرده بودن و یادآور شده بودن که گشت ارشاد در تمام دنیا هست بله در تمام دنیا گشت ارشاد هست یعنی شما مثلا جزیره لوختیا که بری گشت ارشاد داره چه میدونم سواحل جزیره جزایر غناری هم که بری گشت ارشاد هست منتو چرا ما نمیبینیمشون این گشت ارشاد رو این یه مسئله است که الان عرض میکنم اینا چون نامحسوسن فقط هستن که بوده باشن ما قرار نیست ببینیمه چونکه نامحسوسن همه جا حالا ای سردار سخنگو این گشت ارشادهای دنیا با چیا برخورد میکنن این نامحسوس ها؟ در بعضی از کشورها با برهنگی که بیماری عصر حاضر در آینده نه چندان دور هست برخورد میکنه در بعضی از کشورها هم بسیار سخت گیرانه تر. ای چی جاله نمیدونستی ما حتما تو این کشورهایی که با برهنگی برخورد میکنن گشت ارشادشون وامیس سر گذر مثلا این دخترای بی خارجی دامن کوتاه پوشو همجوری قصه غیر میدن تو خیامون را میفتن میرن اینا رو صدا میکنن گلم خانمم میشه لحظه بیای اینجا بعد دختری که میاد خب طول دامن اون دامن کوتاهی که پوشیده داره اندازه میگیرن اگر مثلا از 15 سال کم بود دعواش میکنه که عزیزم گلم شما ماشاءالله مرواریدی هستی در صدف یعنی مرواریدی هستی در دامن کوتا منطور نه اون قدم دیگه کوتاه دیگه خانومم یادت باشه دفعه بعد صدف توی 2 سانت بلندتر انتخاب کنی ایشون البته بگم در ادامه حرفاشون گشت ارشاد رو به انتخابات هم یه جوری چسبوندوندن و فرموندوندن که وعده و وعیدهاشون رو در مدار عقل بزرگ شما که واقعیت‌ها اعلام کنند، چیزهایی که انجام شدنی نیستش رو اعلام نکنن. اساسا مردم خودشون هوشیار هستن و هوشمندانه نسبت به کاندیداشون رأی میدنند. خیلی وقتا این موابید نه تنها آوی رو برای نامزدها گرم نمیکنه، بلکه چالشی رو هم در ریاوری برای اونها ایجاد میکنه. خیلی از موابید فضایی هستش. بله اینه که عزیزانی هم که میخوان برای نماینده مجلس ج... رای جمع کنن دست از سر گشت ارشاد بردارین آقا دیگه نماله یه را دیگه به خدا وعده جمع کردن گشت ارشاد و این صحبت‌ها دیگه شدت تکراری بودن دیگه خیلی لوس شده دیگه اصلا خزه خزه خزه شده دیگه میدونین چند سال پیش احمدی نژاد که تازه میخواست رئیس بشه خب گیر داده بود به گشت ارشاد دیگه اینه که لطفا یه ذره خلاقیت به خرج بدین یه کارهای دیگه بکنین یه وعده‌های دیگه بدین گشت ارشاد به قوله ایشون جمع شدنی نیست که نیست آیا از تنفس در هوای آلوده جان به لب شده اید؟ آیا شنیدن صدای بوغ ماشین ها و سر و صدای مردم گوش هایتان را آزار می دهد؟ آیا از دیدن جوب های پر از زباله و دیوارها های پر از اعلامیه و ساختمان ها قد و نیم قد خسته شده اید؟ دیگر نگران نباشید؟ خرید ملک و اقامت دائمی در جزیره زیبای گامبولا فقط و فقط با هشت هزار دلار یک زندگی آسوده و بدون آلودگی در کنار مردمی خونگرم و سمیمی دور شدن از دنیای تکنولوژی و پناه آوردن به آغوش مهربان طبیعت قامت تزمیهی مادام العمر بدون نیاز به پاسپورت و مدارک شناسایی من الان حدود یک سال میشه که با خریدن این ملک زیبا در جزیره گامبولا واقع در قیام اینجا زندگی میکنم و واقعا راضی هستم بومیان اینجا به قدری مهربون و خونگرمن که حتی اجازه خروج از جزیره رو هم نمیدن گرچه اینجا انقدر بهت رو دور افتاده و البته دوست داشتنیه که اگه اجازه هم بدن نمیشه ازش خارج شد من همینجا اجازه میخوام به پدر مادرم سلام کنم و بگم که حالم خوبه نگرانم چون چونانچه به دنبال راه حل قطعی برای فرار از مشکل آلودگی میگردید است با شرکت املاک گستران پاک تماس گرفته و همین امروز شرید خانه رویایی خود را در قلب جنگل گامبولا تحویل بگیرید فرار از زندگی ناپاک با املاک گستران پاک عربته با آلودگی ما هکر های قانونمند که تعدادمون هم در داخل کشور یا خارج از کشور کم نیست توسط ارگان های دولتی نظامی شرکت های خصوصی یا اون که علیکم. اطلاعات حساس مشتری ها هست استخدام میشیم تا این که اول آلوده کنیم سیستم های اونارو و از طریق آلوده کردن از طریق وایروس کدای آلوده طرفشون شرکت ها رو شناسایی می کنیم و به این شرکت ها و این ارگان ها اطلاع میدیم آقا سلام علیکم خوبیش آقا هکر بود واقعا الان ای داد بیدا آقا ما خیلی مخلصیم ها میگن تلفن ایشونو دیگه حالا پخش کردیم میخوای سامی جان کل فا... فایل و ایناشو پاک کنه رو سیستم، و طریق صوتی نفوذ نکنه حالا به سیستم های ما آلوده کنه ما رو نگرانم پس فردا عکسامو در نذ توی شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه، مثلا این سوشال مکانی و اینا بریم زندان من خیلی آقا از هک شدن میترسم آقا سوء تفاهم نشه ما مخلص شما هستیم شما به هر حال برای هر سازمانی کار می‌کنی بگو ما ازش تعریف می‌کنیم تو برنامه‌مون که ما رو هک نکنی قربونت برم من خیلی خوشحال شدم بازم سر بزن به ما از دوستام لیلا چند وقتی داره تمرین میکنه حشر خاارشه دیروز دمش بهش گفتم آخه حشر خار گفت مگه چیه؟ تو میدونی گوشخواار یکی از عوامل گرمایش زمینه با اون صنعت دامداریشون که گاز متتان اضافه میکنه به کار زمین گیاه خاری هم که یعنی تنها کارخونه های تولید اکسیژن که همون گیاهها باشن و از بین بردن گفتم خب حالا اینا چه ربطی به تو داره آخه؟ گفت همین بیمسئولیتتی باعث شده الان اینقدر آلودگی هوا داشته باشیم دیگه چی یعنی به تو چه ربطی داره؟ گام حالا شاله عصبانی نشو اینم آلودگی خونی میاره ها همون خونتو کثیف نکنه اینا گفت با مزه. به جای این کاره یکم ای احساس مسئولیت کن نسبت به دورو برات گفتم باشه چش گفت خوبه این ماسک و این گلدونم هم براتو آوردم هر وقت میری بیرون ازشون استفاده کن گفتم ماسکو میدونم چه جوری ولی گلدون رو چطوری استفاده کنم گفت دستت بگیر جلوی صورت ترجیحاً که هوا رو برات تصفیه یا ریهات داغون نشه ولی ترجیه میدم هوای آلو دستش کنم تا این که از کتوکول بیفتم والا کامران عزیز نگرانی ما از خودخواهی فرشید منافیست که میخواهد با چشم خود شاهده اتباقه از فردا باشن دل نکرانی ما از خودخواهی است که میخواهد به چشم خود شاهده پیروزی باشن ببین این بوت تیتراجم تیتراجت هم شوخی میکنن دیگه کامران ببین با همه چی کار تیترش خودو نمیدونم برنامه باز میکنن سلام کامران جان چه خبرم سلام رشید جان از یه هوای بارانی در لس آنجلس سلام از اونجا با شما صحبت ما از یه هوای برفی با شما داریم صحبت میکنیم برف اومده الی دو روزه داریم همینجوری میاد میگم یه نیم که زیاده ولی 20 30 سانتی آره و اینجا می یه پاری می یه پولی در میبورد. آره بود چه آره والله شب دو تا خبر از وسط تا کار تازه دارم یکی تو حوزه سینما یکی هم موسیقی اولیش خبر اکران فیلم خبر خاصی نیست به کارگردانی مصطفی شایسته که دوستات ناگهانی از فردا اکرانش تو چهار تا سینما در تهران شروع میشه بخش از صدای فیلم فیلمو بشنویم بعد من بیشتر راجع به فیلم و عواملش میگم بشنویم سردسته عاشقا جلاد نشسته مثلا عاشق هیچی نیستم از ازش متنفرم کود بابای ایش. چه خبرت ریس من سن من سن تو بودم 10 تا سی جوجه رو سه سوت میزدم جدا میگفت چرا با مزه ادم روزی یک ساعت با تو حرف بزنه همه قصه حاشیه ادش میری به خود خال امشب زنگ میزنی به اون دوتا. بیا اینجا تکلیف منو با مامان روشن کن نمیدونم چه گناهی تو این زندگی از من سرزده که آخر آغفم شده بخشه صدای فیلم خبر خوشینی ساخته مصطفی شایسترو شنیدیم کامران بازیگرش کیا بودن رضا کیانیان و من چن شناختم بقیش. درسته بازیگر اصل فیلم فرشید جاو افسانه بایگارد رویا تیموریان، بیتا سرخیز، حسین آرمان و همونطور که شناختی رزکیانیان هستند؟ معلومه که باز گفتم از فردا چهارشنبه نمایش شروع میشه. بسیار خب کار جدید موسیقی چی داریم؟ امروز شوالیه آواز ایران استاد شهرام ناظری تازه‌ترین آلبومشو به اسم رقصانه منتشر کرده. خیلی کار خوبی زیباس من شنیدم. پنج تا قطعه با حال و هوای ارکستری هم داره کار. بسیار خب حالا که تو شنیدی ما میشنویم دیگه بذاریم بقیه هم بشنون حالشو ببرن ممنونم ازت کامران عزیز با تو خدافزی میکنیم تا شنبه با شمبه خودمیم ای جان تو جانم را از خیش خبر کرده انیشه تو هردم در بنده اثر کرده ای هر چه بی‌اند بینی در خاطر تو آیت با به حموم لحظه قنچیز گذر کرده خب با حمد این مؤمنم که هدایت شد روف کارش خب بمظور پرونده اینو که بررسی کنیم فضل چقدر بخش هم که این تصویرم با چادره ایشان برازنده یه فضل چی شده دل بندم چرا هم همی کشی بیا ببینم کره پنیره بابا دادی برد بخش شدم بابا جون دادی بیچه رشدم دادی اصلا نمیدونی خوب حرف بزن با ما دیگه حجاب اجباری به اختیاری تبدیل شده پناه آه. بر خدایا آیا حضرت آیت الله جنتی خودش رو رد سلایت کرده زبانم لا. چی شده پسرجان خوب ببین نهداددی با ما نه اینا چیه میگی جیمبب و هم اعلام کرده رو بته خودشو با ایران قطع کرده دادی بدبخ شدنبدگه کجا؟ زییمب و بودگاهین نه نهداددی جیمب به بغل زییمباب و یه دیی سیصد هر نفر جمعیت داره تازه میخوان اعلام کنند که کشوران دادی خب قط کرده که قط کردهیه رو... جور گفته موفق کردیم خدایناکرد برادر پوتین با ما رابطش راقط کرد. دادی با روسیه به من چخه من دارم میگم با جیم باب کار میکردم از اینجا ددی شلوار رو لباس میبردم براشون از اینجا میفهم اومو سنگ پای جیم باب ویی والد میکردم سودش هم خیلی خوب بود ددی من چیکار کنم حالا الان چه وقت سفارت گرفتم بود بابا باشن دیگه حالا دادی... شلوغش نکن تو هم دیگه گرفتن آخی. سفارت از آرمونهای انقلاب ماه هم مگره نا و لباس نداشتن خودشان تو برایشان وارد میکرده بابا ددی اینا از این قبایل تازه به استقلال رسیدن تازه من داشتم براشون لباس و جا میداختم دیگه خدایی خیلی هم خوب پول میدادن بله. خب بلا نداره دیگه آرمانهای انقلاب مهمتر آخ آخ از این مسائله پس آه این یعنی کی تونه باشه این وقت شهر ددی از جیم با است دادی دادی چیکار کنم آره. بده ما جوابشو بدیم نه ترس پسرم شجا باش دیگه باشه. دادی بده. ببین اینا یه زبون هشل هفتی دارم بزرده بزنم روی سپیکر بلکه با هم سردر بیاریم چی میگن دیگه آره ندارم باشه. و خودمون به همه زبانها واردیم بذار ببینم باشه. این دنبال روحای آل سعود به چه حقی روابطشان را با فرزند دلبند و موقعت کردن بذار ببین آه دردی بدیم حالا دعوا نکنی میخوام یه جوری جوش بدی رو بتر رو دردی بتونم من باز با اینو کار کنم نه نگران نباش دیگه نکن... ما بلدیم نکن... کارمون رو آره باشه گذاشتم رو اسپیکه الو بله؟ الو کن یو هیر می مستر دومبه مستر دومبه مستر مستر یعنی. آره آره بایسته ببینیم چون بایسته ببینیم چون الیا نه. یس یس نه نه فرزندم تلو. خرابه. چرا صداش اینجوری ری میاد؟ آبادی داره به زابون جیمبار و یارف میزنه دیگه. یس یس ماستر دوم. آه آه. خب موارد متوکر بشه. شیبود اسمشین میستر دومبالون میستر دومب داد دومبالون نگی فو اونجا نگی با... داره, داره حرف می‌زنی نه نه نه نه فیلتر رو هات الو و جاتیس علیه میستر دومبا علیه ای میستر دوم نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه چقدر صوت تأثیر گذاریم دقیق حرف بزن باش دیگه سوکت شده ببین آلو مستر دومبه انت خوب انا خوب انت المومنین خوب با ده ده. چی باید اینجا سعودی الفراموش الکاسبی بر... البرقرار دیگه سود الفراوان دیگه چیز جز... الهل دیگه دادید فکر کنم داشت میگفت هربستان بهشون پول خوب میده اگه میخوان ما باشون اعتباط برقرار کنیم باید مثل که بیشتر از اونا بدیم تا اینا قبول کنند. آه, آه فهمیدم بزار الان درستش میکنی ببین مستر دنبه ما بل. چی گفتی؟ آه بله ما پول نو, نو پول ما آه, آه الان فهمیدم چکار اما چی اما پول نو پول اما علی ردیف ادیف، علی الوبوم، دادی شیمیکی، چی چی ال... چیه حمیدی، دادی نسکی خوششوم و دادی نماد، دادی بیتم ازت بزنمی بزن بزن. آه ببین علی ببین مستر دنبه. شما كل هم خیالت راحت آلبوم الفول الفول جوان فقط اون پول چی شد فرزندم او... این حمله کردن اینجا؟ نه بابا ددی دومده و برادرش دارم ممی... خوشحالی بیکنن اینو همیشه همیزیری هم ده... دیگه ای ددی دادی کرم خیلی خوب بزه بزه با ما قط کنم سرمون رفت بابا بله کن ده. دادی چه کردی دمت کرم بله دیگه از قدیم گفتن گره که با دندان هم باز نمیشه را باید داد به روحانیت بازش بکنه می دادی. می این حرفا پسر ددی می مگم این دنبه برادراش اسمشان چیه اینا حتماً پاچه و سیرابی و اینهایه دادی دادی آه. دادی نمیدونم بگو ولی بچه های با همشون دادی تو کار لیف و سنگ پا و اینا نگه بل انشالله یه سفر بریم همین جیمبایه چیه با هم ایک آلبومی آه. ورق بزنیم دیگه نه بابا ددی اینقدر دوره بیچاره میشیم ده ده بابا میفرم. بلش کن با بگو اونها بیان اینجا آه. با هم بریم با هم خدمت مقام معظم رهبری دیگه فرقی نمید اما خانم آقایان برای کم کردن آلودگی دیگه هوای سری راه حل‌های ساده و ابتکاری وجود داره که من الان میگم اولیش اینه که هرکی یه کاری داره یه ماشین بر نداره بیافته تو خیابونا چه اشکالی داره توی یه مسکونی خودتون مثلا برای بیرون رفتن با هم هماهنگ باشین همه با یه ماشین بریم بیرون ها چه اشکالی داره مثلا فرض کن شما می خوای مانتو بخری بر خودت همسایه طبقه پایینی هم که دو تا پسر جوون هستن می خوام ماشینشو بعدا بردارم دور دور بازی کنن خب با هم دیگه برین چه اشکالی داره سر رو هم خانم همسایه مثلا دسرآسی رو که وقت دکتر داره میتونین اونم ببرین برسونید تازه توی ماشین یه جمعیاتی هم که باشین میگین گینه میخندین و موزیک و تو این ترافیک و شلوغی اینا خوشم میگذره بهتون حالا چی شد؟ از فردا کلاً روزیه ماشین از پارکینگ مجتمع خارج میشه. همه کاراتونو یکیشه میکنین یه یک کاسه میکنین با همون ماشین انجام میدید. تموم شد رفقا. شو. روزنامه جمهوری اسلامی امروز تیتر زده بود که درخواست جهانی برای خیشتنداری ایران در مقابل اقدامات مخرب آل سعود چی شد؟ اقدامات مخرب آل سعود؟ ولی ما که گیت شدیم بالاخره آقا کی سفارت و کی آتیش زده؟ کی به کی اصلا؟ چیه دکتر؟ روزنامه شهروند با اشاره به حرفهای الگرزا دبیر کشتیگیر سابق و عضو فعلی شورای شهر تهران که گفته اگر حجم تخلفات در شهرداری را می به قالیباف رعی نمی امروز تیتر زده که دبیر با قالیباف سرشاخ شد سرشاخ شدن اونم درست وقتی که دوری ریاست قالیباف توی شهرداری در حال تموم شدنه مثل اینه که بعد از سوت پایان کشتی زیر دخم گرفته باشی قصد یعنی... نواشید دل عبر. خدا قوت پهلوان امشب امشبم گذشت ما موندیم و کلی حرف نگفته شعر بزرگ هی علف سایه چه خوب گفته که ای بس که تازیانه خونین برق و باد پیچیده دردناک بر برگرده زمین اما زمین همیشه همانگونه سخت پشت بیرون کشیده تن از زیر هر بلا با باز کرده به لبخند آفتاب زرین و پرس خاوت و سرسبز و دلگشا بگذار چون زمین من بگذرانم این شب طوفان گرفته را گه به نوشخند گوهربار آفتاب پیش تو گسترم همه گنج نهفته را شبتون خوش روزگارتون آفتابی <تصفيق>